ایران بازنگری در تاریخ قلم رو به میانیم بایدیم ما انتظار نداریم که حتماً توافق کنیم رو مکانی ایران بریم جلو تا تای برنامه نه دوستان از منظر خودشون داستان رو روایت خواهند کرد بنده از منظر خودم مثلا زمانی که برسیم به زمانه و مثلا اینا بهمن فکر نکنم دیگه اصلا این چیزا مهم باشه جا نظر دوستان اینا کوچ کردن اومدن داخل فلات ما هم که از اول هم بگیم همینجا بودن یعنی موضوعات یکی میشه باستان شناسی فرارو رو که روس ها انجام دادن باستان شناسی خیلی ناقصه نه خیلی خوشحال شده بودن که اومده بودن یه چهار یه چه میدونم مثلا 5 متر د 6 متر چیز کرده بودن یه بناهایی بالاخره اشکانی نا پیدا کردن مثلا بعد از 200 سال سیطره بر اون منطقه خیلی خوشحال بودن کاری نکرد تو فراردن روسا هیچ کاری نکردن شما میداد و مثلا شوهه ایجاد میکنید بعد بندهش که مال با قرن سوم هجریه ما فنبق دادگیه <تصفيق> البته البته میده به سنت های کوهن بله ارجا میده ولی توش پر از ایراده ارجا میده به سنت کوهن. تازه سنت کهنش چیه خود مهریه برایش براش سنت فوق کهنه ولی ما یه قولی هست به نام زمان شمسی من فقط روی یفت فاکتور نیست که, که گفتیم شما شهرده ببینید من خودم قبول دارم ایران میرم گفتن که پوینت این فرهنگی برای سکای شما شهر خوده این کاملا تغییر است ببینید همین امروز هم شما شهر دوشنبه وقتی برین یه شهری اما اگه به شما بگن دوشنبه رامش بخشتر یا شیراز شما مطمئنا میگن شیراست بگن دوشنبه رامش بخشتر یا اربیل میگن اربیل میدونین همین امروز هم اونجا رامش بخش نیست به نام ایزدد یک تا سلام و عدب و احترام خدمت هممیهنان گرامی شنوندگان صدای امید قسمت 25 برنامه داغ ایران رو در خدمت شما هستیم در قسمت های 23 و 24 بحث بسیار داغ هستند و ما هنوز به توافق و اجماع نسبی هم حتی نرسیدیم هیچ ایرادی هم نره تا 20 تا 30 تا برنامه هم باشه در مورد دوری جمشید بحث خواهیم کرد چون تا تکلیف این روشن نشه. ما نوار تاریخی که قصد داریم رسم بکنیم و بر اساس اون تاریخ قلم روی میانی رو بازخانی بازشناسی و باز تعریف و باز نویسی بکنیم امکانش وجود نداره. در قسمت گذشته یک مناظر مانندی بین جناب آقای ایران مید جنناواقا کریمی صورت گرفت جنابقا کریمی وقت زیادی برشون نرسید. من از جنابقای کریمی خواهش میکنم مباحثی که از ایشون بلام شروع بکنیم دلایلی که ایشون معتقدن خب بالاخره ایشون بر اساس اسناد سند اسطور شناسی مطرح کردن خودشون هم زبان خوندن و اسنادی چون هنوز جناب ایران ایران نرسیده به قسمتی که اسنادشو بیره اصنادشو سندخانی هم نکرده ولی هیچ ارادی نداره هر کدوم از کارشناسان دلایلی که مطرح میکنن هیچ لازمی نیست که حتما با مرتب مطرحش ایشون شما مثلا اسناده استورشناسی مطرح ایشون هم حتما سند استورشناسی مطرح بکنه جناب آقای کریم شما کل دلایلی که تا به حال در مورد اینکه معتقدید ایران وج در قسمت آسیای میانه یا خراسان بزرگ یا فرارود هستش اونها رو اول از همه به طور خلاصه تیتروار بفرمایید بعد دلایل دیگی که علاوه بر اون تو برنامه های گذشته فرمودید اینا هم بفرمایید تا اینکه برسیم به بقیه مباحث به نام خدا با درود فراوان خب من ترجمه دیدم الان از زبان شناسی آغاز کنم. ده. ببینید تقریبا چند دهه پیش اومدن زبان‌ها رو به دو دسته تقسیم کردن. تولیسی گفتن ستم و کنتوم. اینا از کجا آوردن؟ گفتن خب یک سری از این زبان‌های آریایی که اینا بهش میگن هندوروپایی به عدد ستم میگن ستم. یک یه سری ها میگن کنت. خب ما یه قانونی داریم به نام قانون گریم. که میگه همخوانهای که در زبان های آلمانی تبدیل به ه میشه پس این کنت میشه هاند در زبان های که آلمانی و انگلیسی هم جز بشن میشه هاندرد در زبان انگلیسی خب حالا گفتم که دوستان بدونن که مثلا 100 با هاندرد چه چرا میگیم آقای نایرلش است بعدها ها این مساله زیر پرسش رفت گفتن ما همچنین بندی نمیتونیم بکنیم خیلی دقیق نیست گفتن چرا خب گفتن که این تقویت چون این موضوع زمانی که اسناد توخاری به دست آمد آه. توخاری شمال شرقی ترین سندی که مطالبه داشتوردن از زمانهای های آریایی یا به قول اینا هندوروپایی کاملا ویژگی کانتون داره خب اونا خواستن یه جوری ربطش بدن به یونان میگن خب اینا یونانی هایی بودن که وقتی یونان حمله کرد رفتن اونجا مستقر شدن اینا خوشبختانه آواشناسی که انجام شد و من بارها تکرار کردم که زبانشناسی شناسی بدون آوا شناسی بدون وادشناسی شناسی و از همه مهمتر بدون معنی شناسی کوچک ارزش علمی نداره بله. تونستن از این طریق ثابت کنن که آواهای زبان تخاری هست که از زبان یونانی هم کهاهتره یعنی ما تونستیم به وسیی زبان شناسی ثابت بکنیم که اینها هرگز یونانی نبودند خود به خود این شبه وجود اومد خب اینها چجوری تقسیم شدند چرا شاخه چندم در این هم در دور افتاده ترین و دست نخورده بعد زبانی که تونستن کتیبه های باغااسکوی که برای هیتیا ها بود پیدا کنند قضیه یه خورده ی پیس خورد اول اینا طوری شده بود که حتی وقتی میخوندن که میدیدن این واجه آریایی نمیتونستن قبول کنند ولی برگردن کتابی داشتن بر هیتی ها ترجمه سک خاانوم دکتر روغی بهزادی قشنگ اونجا میگهم می یه وقتی میخوندن میدیدن آریایی با قبول نمیکردن نمیتون بپذیرن، چون چنان این فرض کوچه دروغ در ذهن اینا جا افتاده بود که نمیتونستم بپذیرن حالا ربط این دوتا با هم چیه رفته این دوتا با هم که در غربی ترین قسمت زبان های کههن هندروپایی به قول اینا یا به قول ما آریایی که هیتیا هستند یک پیوند آایی و واجی با زمان تخاری پیدا شد که ما خود داریم در مقاله مینویم با بچه های علم طبع آه. بعد خدمهشون عرض شد که شگفتیار چند برابر کرد گفتن خب ما حالا سته چیکار کنیم کنتمو چیکار بکنیم دیدن اصلا نمیشه این جدول بندی به این صورت قرار کردن قدیم گفتن آقا ما غربی ها کنتم شما شرقی ها ستم. بعد بیان در اسلامی هم سته فراونه گفتن خب اینو چیکارش بکنیم سندای اوستا من به شما به جرئت میگم اوستا و سنگ اگر نبود تاریخ کل منطقه میانه هرگز کشف میشد. شاید بپرسید بگید چرا؟ چرا؟ رمزگشایی از کتیبه 20 که دارویش نوشته بود. چون میدونید دیدید که عتی داروش به زبون اکدی هم نوشته بود به ایلامی هم نوشته بود. این بعضی از کتیبه‌های خوش به ست زبون نوشته بود. اومدن که وقتی رمزگشایی کردن زبون فارسی باستان چون خیلی برایشون پرسش پیش اومده بود که اینا چه کردند. اومدن دیدن خب بیشتر این واجهه ای که تواترش یا بس آمده کتیب های چیه رو پیدا کردن حد زدن چون برای پادشاهانه پس این باید کلمه شاه باشه با کلمه شاه اومدن در زبان عوستهی گفتن بیدن خب این در شاه در عوستهی چی میشه دیدن از روشه خشایی به من توانایی داشتن نیرو داشتن تونستن همغان و وشه رو پیدا بکنن همون اونو اومدن به خط ایلان. گفتم پس بعد ترجمه اکدیش هم همینجوری باشه. خط اکدیش. پس گفتم این نشانه میخویم پس باید صدای باشه در اکدی. صدای شه باشه در اکدی. تمام رمزگشایی های زمان منطقه که الان ما داریم بهش استنادت میکنیم. سرش دعوی داریم میکنیم. همش همه و همش وامدار عوستاست. و سنگسریت اگر این دو تا زبان نبودن هرگز فارسی باستان رمزگشایی نمیشد. اگر باستان نمی نمی‌شد هرگز اکدی آشوری و بابلی نه نمی‌شدن و ایلامی. خب اینجا ما داریم قدرت زبان شمال شرق رو می‌بینیم. چرا؟ چرا اینقدر بهش استناد کردن؟ چون حتی یک واژه غیر آریایی درش نیست. شمال شرق. بله در زبان اوستایی اینو هیچ کس سالا نتونسته رد بکنه. ما هم برنامه اولاً بود گفتیم که اینا خواستم واژه گچ یه چیزی تامین بدم به اکدیایی که خوش‌وقت‌ها زورشون نرسید خوب. که در اگرشان یکم ویواش در چیز اومده در اوستایی حتی یک واژه غیرآریایی داش پیدا نشد مهم‌ترین کل از واژه غیرآری آریایی آریای هم نجات هم هم زبان این چیز دیگه یه تفسیر کردم در مورد نجاتشون بعدا صحبت خواهم کرد نصیب. دوستان گفتن ایرانی‌ها ن... چیزی به نجات قبول ندارن ولی ما حالا بعداً سلام میارن که کاملاً اتفاق قبول داشتن کاملاً قبول داشتن بعد خدمت شما رس نژاد به اون شکلی که الان مطرحه بله. است به شکل ژنتیک مطرح مطرحه. واقعه ژنتیکی نمی‌شناختن چیه؟ دقیقاً ما ژنتیکی نمی‌دونستان چیه. ولی به عنوان نژاد حالا من تفسیرش براتون خواهم گفت که این تفسیرش چیه؟ ما واقعا دکتر اونم متمایزکننده بله. جمعیت از جمعیت دیگه می‌شناختن. کاملاً می‌شناختن. حتی ما واژه‌ی مرز داریم. بله. واژه‌ی مرز مرز ما 1450 پیش از میلاد شناخته شده بوده توی زبان اینها. یعنی می‌دونستان که اختلاف زبانی نژادی هست. بگرن. مرز مرص معنی نداشته واسشون حتی شما میبینید که کاسی ها وقتی میرن تو میان رودان شروع میکنن به مرز بندی کردن حالا من صلاحش هفته بعد میام خدمتتون حالا بگیم از این سخنا اوستا و سنگسرید باعث شدن که تاریخ این منطقه پیدا بشه اگر این دوتون نبودن هرگز ما اصلا در سومر خبری, داشت خبری داشتیم نه از آشور نه نه آن کرد به امان کتی بهش خب ما گفتین ساعتوم و کنتم اینها این سندایی این که پیدا شد اومد این معادله به هم زد یعنی دوباره کانون زبان شناسی که رفته بود به سمت غرب، حتی اینا کشون دانش به سمت لیتوانی و لتونی که بعدا من, من خدمتتون میگم چرا و این کارو انجام دادن. دوباره برغای سمت شرق، یعنی کشف زبان تخاری و سنداش بزرگترین موفقیت زبانشناسی شناسی برای اینکه ما بگیم که آ میانه جای یکی زبان های هند و به قورینا و آریایی از هم جدا شدن زبان شناسی میگه طبق قوانین زبان شناسی چون زبان آریایی تصریفی هن. یعنی شما مثلا کلمه من وقتی فاعل میشه با کلمه وقتی که جنتیف میشه فرق میکنه مثلا همین کلمه منی که امروز ما فارسی داریم میگیم این کیس جنتیفی بوده در فارسی واسون و در اوستایی که الان ما واونه فاعل ازش استفاده میکنیم ولی در فایل در اونجا ما ازم بوده که همین یعنی الان تو تالشم از هنوز داریم به من میگن از همون که الان مثلا تو انگلیسی شده آی این همش هم ریش است یعنی متمم بوده درست نه یعنی جای... مثلا این پاسوی کتاب من دقیقاً یه اونجا مثلا این بله. تو زبان را جار مجرور اینها نشون میده که خب این هشت کیسی که داشتن که ف... الان در اوستا هشت کیس ما داریم دقیقا اون زبان ابتدایی در گاتا ما داریم بله. برای همین ما میدونیم که گاتا زبان بسیار کهنیه ولی شما این کیس ها رو در دیگه در فارسی باستان نمیبینید ما در اوستا فل این پرفکت داریم ولی در... در فارسی باستان که شما اینو نمیبینید همه پرفیکته. حالا من این رو باید توضیح میدم. باید توضیح بدیم. مثلا حالا رفت اینه اینها و کمک اینها به فضلی شما بله. این رو بگیم. رفتش اینه که نشون میده که زبان شمال شرق کوهنتر، اسیلتر هنوز تمام اون خاصیت و ویژگی هاشو نگردشته. حتی شما نگاه میکنید. زب... همین زبان سکایی، مثلا ما در زبان پهلوی اصلا چیزی به نام کیس دیگه نداریم. حالا چه دلیلی وجود داره چه دلیلی شما داری که این ایرانیان شمال شرق با ایرانیان شمال غرب شما و جنوب غرب زبانشون یکی نبوده چه دلیلی وجود اطاقا اطاقا چه دلیلی بنده جلسات اولین بود که میگفتیم ما تو کردی حتی با سعودی درست واسه یادم ولی کون برنامهش دیگه خاطرم نمیاد دلست. اصلا من نمیگم جدا بوده ولی دارم میگم که ببینید ما در اسطوره جمشید که مادم با عره نصفش کردن دقیقا داره توضیح میده تسلط میانرودانی و, ف... میان بل... و قرب ایران تسلط مثلا شما میدید حتی نام های, های میانرودانی رو رودانی رو میذاشتن خدایان میانرودانی رو اینا میپرسیدن و در شما هرگز هم, هم چیزی شما نمیبینید که حتی یک دونه حتی یک دونه نام غیر آریایی باشه در نام شاهان نام شهرها، نام روستاها همین الان من به شما خواهم گفت که پایتخت کشور میتانی با لهجه زبان‌های شمال شرقی قابل و شوگنی و شوگنی بله به بل. عنوان پایتخت شهری میتانی تنها با زبان شمال شرق قابل معنی شدنه متشکرم آقای کریمی توضیحاتتون دقیق بود و در این حال خب دلایلی که فرمودید بیشتر در علم زبان شناسی هست ولی فعلا ما علوم دیگر رو وارد نکردیم به امید و خدا بحث خواهیم کرد هیچ ایرادی هم نداریم و با باید اینجوری مطرح بشه و, و ما بتونیم بررسی بکنیم این اسناد رو جناب آقای فیروزی به عنوان پژوهشگر باستانشناسی نظرتون در مورد بحثی که مطرح شده آیا این فرضیه که من مطرح می‌کنم هیچ ارادی وجود داره که مثلا ما شمال شرق ایران و جنوب غربی فلات ایران رو اینا رو مثلا یکی بدونیم هیچ ارادی ای... وجود داره که مثلا حالا می‌فرمایید که مثلا از شمال شرق منشأ بود حالا هم مقاله ژنتیکی دارید هم مباحث تاریخیتون و پژوهش‌های باستان‌شناسی‌تون نشون میده. آیا ایرادی وجود داره که ما معتقد باشیم که این دو تا منشاءشون حته یکی بود یا کشور بودن ایرادی وجود داره از این مسئله از این مسئله با درود بر شما آشندگان و شنوندگان من الان اول بحثم میخوام خوام به من کارشناس ارشد ژنتیک صحبت کنم بله ارزم به خدمتتون به نظر من چندان اختلافی بین آقای ایرامه و من آقای کریمی نیست تو این زمینه فقط بحث نقطه آغازینه چیزی که به حال من میبینم در متون مهاجرتی از شمال شرق به فلات نشون میده قبلت از چیزی که این خارجی ها ادعا میکنن ولی مهاجرت قدیمی تر ولی از سمت فراروت هست به فلات چیزی هم که ژنتیک میگه ببینید به حال یه پدر مادر هست یه فرزند دیگه در ژنتیک اون دفعه برست همین هست نیا اون هاپلو نیایی با قدمت 20 هزار سال تا 34 هزار سال این خاصگاه در علم ژنتیک، آسیای میانه تشخیص داده شده و این با آب و هوام تطبیق داره. اون هوای اونجا بهتر بوده تو این بازه. این چیز عجیبی نیست. ولی هاپلو گروپ فرزندی که آر 1 ای هست این 18500 سال این جنوبی تر هست. حالا افغانستان هست وسط فلات، حجمش باشه. این جنوبی تر هست. خراسان فعلی ایران دقیقاً شرق فلات ایران. این یعنی یعنی اینا قبتا بالا بودن، اول که آفریقا بودن. بعد حالا گام بعدی ما به حالی خبر نبیده کجا بودن از آف صد هزار سال تا سی و هزار سال پیش ولی گام دومه که ما انبوزه داریم آسیه میانه هستن در شهرت آب و هوایی خوبی هم بوده بعد اون شهرت آب و هوایی بد شده اینا اومدن جنوبتر اینجا دیگه باز همون خطانشون میده اما این به معنی این نیستش که در جنوب غرب ایران در مثلا خوزستان اولا میانرودان که این بحثات ما میکنیم جنوب این هم جایی که الان سومر بتا تشکیل شد باتلاقی بوده اصلا هیچ کس اونجا زندگی کنه این شما چیزای پیش از تاریخ میان رودان رو بخونید شمال هستن شمال میان کردستان امروزه عراق جنوب ترش امروزه هم باز این جاها بودن اون انسان پیش از تاریخ میان رودانی اونجا بوده ولی در جنوبش چیزی نبوده باتلاق بوده و این نواهی نواهی باتلاقی بودن پایین تای فرس خلیج بوده بله ولی خب این چجوری میتون یه بستر انسان باشه بوده با یعنی که حالا دانشگاه بیرمنگان گفته اینجا یه کانون بوده کانون استقراری ولی این پوتانسیل گامه بعدی از خیلی جفاس به کجا بوده چون ما رد بعدی انسان در خوزستان به ساده شکلی متمدن رو ما بعد از هزاره مثلا چهار روم و پیش از میلاد میبینیم قبل از اون نه اثر جنتیکی شما میبینید نه چی ولی عرض کردم از خط فرارود به ولی خب تو ایران. ها در مورد جمع... رستم یک چیزی در مورد رام هرموز گفته میشه اینا پس از الهاقات پس از نه الهاقات شاهنامه بود اینا است که بعدن به من نضافه میشه بله مثلا این آقای زحاک جانشینه چیزم از میخواد از بیت المقدس بلندشه بیاد بیرون ولی معنی نداره با باستان شناسی در جنتیک آقای فیرزی اصخایی میکنم این الهاقاتی که بعدا به متن اضافه میشه رو یادتون نگه, یاد نگه دارین. اینو یادتون نگه دارین. اینو یادتون که بعدها به هر متن میتونه اضافه اینو به یاد داشت, <طلب> داشت کنین خواهش می کنم. نشست 25 دوستان تایید کرده این بها باید با داده های ژنتیک و باستان شناسی ما معنی پیدا کنه. معنی پیدا نکنه الهاقات ولی اگه معنی پیدا کنه میتونیم امیدوار باشیم که چی؟ پس اینا پوش اضافه کنید. میتونیم امیدوار باشیم که اثبات بشه. دقیقا قابل اثبات است. ولی حالا ببینیم در جنوب غرب ایران چه خبر بوده من خیلی برام جالبه دو تا دوره متفاودی که پیش از دوران باستان، پیش از اسلام و دوران بعد از باستان دوران اسلامی ایرانیان باورشون برای بود حتی اول ها رو میشناختن دو من که باورشون برای اون چه که ایلامی میگن اینا چون پادشاه ایلام, م... ایلام میانه در باستان شناسی که ما بهشون میگیم ایلامیانه خودشونو پادشاهیتی که معرفی میکنن پادشاه شوشو ایلامو انشان میگفتن یعنی ایلامی هویت کاملشون نبوده سه تا منطقه است شوشو ایلام و انشان بس این به ایلامی نمیگفته ولی بازم جالبه که هم داریوش و هم مسعودی مسعودی معروف نه نویسنده صاحب مروجه دقیقاً من. اومدن و ایلامی ها رو این چیزی ما اون ایلام میشناسیم و میگن ایرانی رو از خودشون میسن مثلا متن مسعودی من میخوام بخونم میگن ایرانیان ایران را به ایرج گویند یعنی به نسبت میدن ما این در جههای دیگه هم داشتیم. آرگیوا رو با پادشاهی نخستینشون آرگوس نسبت میدادن. و میان ایرانیان خلاف نیست. یعنی اختلاف نیست که همگی از فرزندان ایرج بودن یعنی خودش از یک تبار میدونن. این خیلی جالبه. یعنی خودشون چند تا دسته نمیونسن. بعضی کسا نیز بر این رفته‌اند که دیگر اقوام ایران و مردم و ولایت اهواز از فرزندان ایلام‌اند. این تا اینجا و میان ایرانیان خلاف نیست که همگیشون از فرزندان کیو مرسن. یعنی میگه که یک عده میگن که نه این وریا ایلامی هم رتبهشون نره ولی میگه اون ایرانیان شدیدن اعتقاد دارن که همشون براشون این نجات جوراگان ایلامی تعریف نمیشه ولی این به معنی این نیستش که خاکگاه بخواد مثلا جنوب غرب باشه به معنی اینه که همه اینا یکین یعنی سرزمینشون جنوب غرب ایران هم غیر ایرانی و آریایی نمیتونه باشه چون قایم مردمانش اینو اعتقاد داشتن این کمایی که ما این تا به امروز یک هاپلو گروپ غیر آریایی غیر هند و شرقی معرفی نکرده یک مقاله شما پیدا نمیکنید این J2 هست که J2 من صحبت خواهم که بعدن که این چی اساساً ربطی داره به موضوع نه که اساساً غیر هند و اروپاییه هند و اروپایی اینا ولی چیزی که ما میدونیم چه اسنا چه ژنتیک تا حالا اساساً کهن تاریخی و ژنتیک امروزه نگفتن که غیر از ایرانیان در این فراد کس دیگه ای به صورت یک جمعیت سکونت یافته که بخواد اثر ژنتیکی یا فرهنگی بذاره وجود داشته باشه این از این قضیه دو تا موضوع دیگه را می‌خواستم بگم به حال متن ما که کردم میگه که ایرانوی چی بوده بعد اینا از طرز سرما در رفتن اومدن به جنوب و صغد و فلان این ارفا و متن بعدیم میگه که جمشید حکومتی داشته بعد از اون فرار از یک سمتش ایرانویج و یک سمتش هم البرس و پاینتر هم بوده به فارسی دو تا متن هستن کتاب که من حالا راجع به همین قضیه که اینها میتونن شاه باشن ولی نه این کتاب جهان اسطوره ها مال جورج هارت و دیگران ترجمه عباس مخبر هست این دو جلدیه جهان اسطوره ها این متنشم خارجیه خارجی این یا مترجم که آقا اساطیر ملل من جمع کرده شما دو, دو جلد ببینید اسطوره های مصر رو یونان رو چه میدونم بقیه چینو اینا داستان‌های خدایانه همون چیزی که گفتن عجله جل به ایران که رسیدن ای خارجی‌ها داستان پادشاه و پهلوانان شده این خیلی توش نکته است چرا بعد اینجوری میشه چرا داستان ایزد میترا و اینا رو ننویشتن داستان آنایتا رو چرا ننویشتن چرا داستان اهورامزدا داره صحبت میکنه با ایزدان اطرافش امشاس پلان رو چرا ننویشتن اینو دقت بکنن شنوندگان عزیز که بعد ما وقتی میخوام بگیم که اینا چرا پادشا هستن از اینجا میخوایم صحبت کنیم بله خیلی متشکریم بازم شما مباعث خودتون رو مطرف هم دید میریم آقا جناب آقای ایران مهری گرامی جناب آقای ایران مهر خب شما هنوز وارد سندهایی که پژوهش هاتون همخانی داره رو وارد نشدید و این تا حدودی یکی از دلایل به که صورت میگیره دلیلش اینه به نظر بنده شما مباحث خودتون رو مباحثی که مقدماتی خودتون قبل از ورود به سند هستش نارو تا کام تو این برنامه تموم بکنید از نشست آینده دیگه اسناد خودتون رو مطرح کنین تا دوستان اگر در مقابل موسی سن. مثلا سند اصول شناسی شما مطرح می‌کنه سند اصول شناسی مطرح بکنن سند دیدن هواشناسی مطرح می‌کنه اینا سند دیدن هواشناسی مطرح بکنن یا مثلا سند اقلیم شناختی مطرح می‌کنه شما اینا سند اقلیم شناختی مطرح بکنن خیلی ممنون می‌شم که تو این قسمت در این فرصتی که هستش باعث مقدماتی پیش پیش‌سنادیتون رو تقریبا تموم بکنید اگه می‌تونید البته خایش میکنم درود بر شما و درود بر شنوندگان گرامی بله ما در حال تبعین موضوع هستیم ده. بنده چارچوب بحثی دارم که اون رو طبق همون چارچوب پیش میبرم نمیتونم از این شاخه به اون شاخه بپرم مپ پس از دستم بیرون میره تفاوت بنده با دوستان میخوام دکتر حسانی که حالا من خودتون باشن این مطلب و جلو جلوی روشون میگم چون الان نیستن درست نیست اصلا اعلام کردن که نه من نه زمانی دارم نه مکانی دارم اول اخو چون یه بار به با من گفتم من نمیدونم این دانشجوهایی که ایران شناسی و زبان باستانی و ای تاریخ اینا تو ایران می‌خونن چیکار میکنن پس خب دربار تاریخ ایران نه زمان داره نه مکان داره حتی دکتراش تاریخ پس چیه تاریخ اگه زمان و مکان و اینا نیست پس پس چیکار می‌کنه این دانشجوهای ما در این حال اون یک بحث جدا تفاوت بنده با دوستان اینه که بنده چارچوب تاریخی رو رفتم پژوهش کردم نو سنا دویم میذارم کنارش یا قبول میشه یا نمیشه دیگه دوستان چون این روند رو دارن میبینن جای دو دچار اختشاش میشه ذهنشون برای اینه که اینا ایمان دارن به این فرضیه موجود اینا از قبل این تو ذهنشون بوده آسیای میانو اینا اصلا نیازی هم به اثباتش ندارن جنیدی میگه کزازی میگه طالب میگه گشمن میگه کریستنسن میگه اینا میگن همه میگن همه میگن اصلا مشکلی ندارن تا حالا با کسی بحث نکردن در این باره تا به هم رسیدن گفتن آسیه میانه گفتن دمت گرم و رفتن جلو اصلا اینجا یعنی تو ایران تا به حال کسی که دا این دایموند مطرح نکرده بحثی نشد اصلا دکتر جانشاه درخشانی بود که به کلی مهرموم کردن گذاشتنش کنار تا مرد ایشون بود دکتر مازیار اشرافیان بناب بود که سال 1390 در دانشگاه پرسپولس در آبان ماه اینو مطرح کرد جالب یک ایرانی پژوهش کرد که شما ایرانی ها واقعا متعلق به این خاکین انقدر فحش دادن ایرانیا اینو رو, رو فضای مجازی که اصلا ول کرد رفت دیگه. یک بار من باش تماس گرفتم فضای مجازی منو دکتر فکر کنم کسی دیگهم هم جزمن از شما حمایت کرد گفت حالا بماند دیگه اصلا سرخورده شد یعنی گفت ایرانیا شما مال اینجایین مال این خاکی نسیجه دیگه نمیدین انقدر فحشش دادن من فقط این مطلب بگم ایشون هم همون تضادی نداره فش گفتش که ایرانیان 10000 سال هست که اینجا هستن فکر کنم آقای کرمی و من هم همین اعتقادو داریم این بیشتر ده هزار سالشون صحبت نکرد. بسیار خوب. حالا ایشون که معتقدین به همین کوچه که تو کتابای معمول نوشته، اینا فوشش دادن که نه آقا ما آریایی بودیم، آریایی مگه آسیای میانه نبودن تو داری میگی ما آریایی نیستیم؟ اصلا بس آریایی بوده. بس این چیزی هم که اصلا این بچه‌ای که فوشش دادن اصلا سر زمانش هم بحثی نداشتن. سری اینکه چون تو ذهنشون اینی که یک آدمای خوشگلی به نام آریایی در آسیای میانه بودن، اینا هم بچای اونان. هر کیم بگه بچای اونان نیست، کی بد فوش بخوره. یکی کی دو تا هم از بچهای خوزستانه که الان من باشون در تماسم دکتر بدیه دشتی هستن خب ایشون عمیقا معتقدن که سازه جمشید در جنوب ایرانه دیگه حقیقت من کس دیگه رو ندیدم شاید بشه با انگشت روی دست بله اشکال نداره پس طبیعیه اینجور بحث طبیعیه فقط یه رو بگم الان عرض میکنم آمریکایی ها شدیدا معتقدن که دایتی در میانه نیست منتها نمیگن این دایتی اون دایتی شماست خب میگن دایتی دا شما در آسیای میانه است این رود باستانی که ما داریم پیدا میکنیم تمدن بشری از کنار اون آغاز شده اونو بعدا ما میگیم مال کجاست حالا وایسین ببینیم 20 سال دیگه متعلق به کجاش میکنه نامش گذاشتن دالاماتیا مربوط به مردم بهرین جالب خدا بخیر کن. یعنی دارن داستان درست می‌کنن دوستان ما هم چنان بچسبن به آسیای میانه جاشون خوب خدمتتون بگم فقط من پیش ازی که بس خداو متصبر کنم اون چه که دوستان دارن سند میارن آقای دکتر درست سنداشون متأها دارن درباره یکی از فرزندان فریدون میگن یعنی اون چه که دارن میگن متعلق به ف... یکی از فرزندان فریدونه کدوم فرزند فریدون به شمال خاور رفت تور. تور بود دیگه تور. تمام هر چی دارن میخونن درباره تورها دارن میخونن منم هیچ بحثی ندارم ببینید آنچه چه دارن میگن درباره تورهاست نه ایران وجی ها من اینه. کجا تورانیا رو اخه شما تورارین رو نگفتین معتقدن که بنده میگم شما هرچی چی سند دارین میخونین مال زمانیه که من میبینم تورها به اونجا رفته بودن تو بازی زمانی دارین میریم رو دارین میگین دیگه تو بازی زمانی دارین رو میخونین که من این بازی زمانی میبینم بعد از رفتن تورها به اون منطقه است یعنی اون چه داریم میخونین متعلق به تورهاست درست هم مثلا مثلا شک دارم است بنده اصلا شکی ندارم یه پرسش آره پرسشه در اسناد گفته شده که آلا اونهایی که بعدها تور خونده میشن نیاکان حال بخش نیاکان ما بودن دیگه در اونجا بودن مرزبندی میشه نه اینکه که اونجا. اونجا اینو چطور مثلا میخوام بدم که شما برداشت کردید که تورها اون قسمت از آسیه میانه مال ایرجه نه مال تور خب تورها کجا بودن؟ تورها رفتن ژاپن حتما نه مردمانی در اونجا تورا... بودن بله بالای ايراموجم شما همونجا دارین؟ آخه پایین سه شما کجای من نمیفهمم. شمال سوخت به حال از خود بالای این صغت شروع میشه. ايراموج اندازی مثلا شهر ما قوچان که نبوده که. ايراموج منطقی بزرگی بوده. نه بحث من ایناست که اونها اونجا بودن مرزبندی شد. نه اینکه بفرسنشون اونجا. بلد. کسی نفرستاد اونجا. مگه پادگان بوده بگن آقا گردان تو برو اونجا تو نرو اونجا. سه بهرگی رخ داده فرزندان فريدون سرای تعونه سه بهره شدن. سلم رفت به باختر. تورها رفتم به شمال خاوری که هیچ کسم نگفت کجا پخش شدن در شمال خاوری مگه بهشون میگفتن تو برو از اینجا اونوره رود مستقرشیا به وقت جان اینوره رود مستقر نشیا نرفتن بود؟ بودن مرزبندی سیاسی رخ نرفتن چون شما ایرانوجه اونجا میدونی من دارم از منظر خودم میگم شما از منظر خودت من نمیدونم فریدون از نظر شما کجاست من گیت شدم حالا بزنیم بررسیم به داستان فریدون بعد مشخص میشه دیگه شما میگین ایران اومده تو ایران فریدونم که تو ایران بوده وقتی که فرزنداش پخش شدن یه جایی پخش شدن دیگه از مرکز ایران پخش شدن شما که نمیتونی بگی فریدونم در شمال سقوط بوده داستان که داستان پخش شدن نیست داستان این در فرانسه پخش... پخش کردن در واقع محدوده خاکی است مردم هست. بودن این مملکت اولیه بوده تقسیم که این اتفاق اسطوره‌ای هم نیست و این در فرانسه هم رخ داده م. یعنی شارلمانی بین پسراشم شارل کچل و دو تا پسر دیگه اش سه قسمت می کنه و در این حال البته شما خب ایران وج رو تو همون آسیای میانه میدونید بعد واقع فریدونگ وقتی تقسیم میکنه این تور توران کجاست اونجا ایران میشه. کجاست توران سحمش... کجاست منطقه سلملان کجاست خب بالا... این نامه ها بودند تا دوران ساسانی که به چین میرن و نابود میشن چین هست بعد دقیقه بیا این نامه های تقسیم که رونویسی شدن، آخرونویسی در دوران در یزگر سوم به چین فرستاده میشه. اونجا تا یه مدتی بودودی غیب شد. مرز توران زمین در نامه یا در جیهون هست ما نامه ای که میدونی از جیهون به بالا شد مرز توران زمین. یعنی ویچ حالا اگه کنار چیز بخواد باشه فرای شمال رود آمودریای جیهون باشه، افتاده تو توران. ولی دلن هیچ نداره که این توران و ایرانوی یکی باشه. اشکال نداره. اینا از منظر خودشون دارن داستانو تعریف میکنن در صورت که من عرض کردم من چارچوبه بحث خودمو دارم میرم از نظر من فریدون یه جای دیگه بوده و اینا رفتن آخه آی... میدونین چرا آخه فیروزی همه وقایع رو بعد از یخبندان دارن تعریف میکنن ایم. اما بند زمانم قدیمی تره یعنی وقتی که دو چهار یخبندان میشن نمیتونن در آسیای میانه کسی بمونه کسی نمیتونه در آسیای میانه بمونه که بعد همونجا بمونن بعد تقسیمش کنن ناچار یخبندان اینا رو هول میده پایین اون بماند فقط برام خیلی جالبه. فریدون وقتی میخواد سرزمین ها رو بده به بچه هاش یاد نمیفهمیده یا دیوانه بوده یا سرزمین ها رو یاد نداشته. ایرانویژ در شمال خاوری و دشت نزهوران در بیابان نفود رو گفته پسر جان ایرج این دوتا مال تو یعنی یکی رو در اونور نزدیک جیهون یکی رو هم در دشت نزهوران دیگه به طور مشخص اون بر اوون. گفته پسر جان اون و این مال تو. این خیلی برام جالبه یعنی به تور یه سرزمین داده به سرم یه سرزمین داده دو تا سرزمینی که کاملا چار کیلومتر سی کلومت با هم فاصله دادن و اون و این باشه مال تو این اصلا از اون چیزای خیلی کالبه ببینید سرزمین هایی که تقسیم میشن نامشون مشخصه مشخصه شما ایران وجو میگی آسیه میانه بوده دیگه ایران بگی بندر عباس هم بوده که میانه بوده درسته حالا من اسم این سرزمین‌ها رو در جلسه بعدی به ترتیب می‌تونیم بله اتفاقاً تو کتاب شما هستش اینو به جلسه بعدی خب بگید ایران ویژه کلوسمو شما ایران ویژه معرفی بکنید کجاست بله ببینید این مکته خدمت فقط یک کلمه است ببینید بعضی سرزمین ها که میگم الحاقیه اند باستان شناسی یکیش همین است این مثلا ه... یکیش صغده نه نه ببینید این سرزمین هایی که میگن حجاز و هند و <تصفح> سند و, نه نه و یمن شما یه دیگر یمن دیگر. و حجاز و سند و یمن که این حرف ها که میگن این ها رو دوز اون تقسیم بندی کردن این کاملا الحاقات خب این نظر شما از نظر تا اول الهاقات بخو مرو و سغت الهاقات شما باید اثبات کنی منم اثبات, اثبات کنم بود ولی ببینید شما مثلا اینا دادن دوران پله پله میون داخل فلات خب دا دا تفسیر شما رسیدن مثلا در آخرین نقطه به کویرین تا مثلا فرق یکو کجاش نوشته کوچ حالا به اون میرسین منو باطن بحث را میدونید مشکل جناب آقای فیروز پس ببینید اجازه بدید جناب آقای ایران تکلیفشون رو روشن ببینیم آقا من به نظر من در نظر در نظرگاه جناب آقای ایران میت ایرانوج خیلی بزرگتر بوده نمیدونم حالا اگه اشتباه میکنم مهمتر بوده. مهمتر بوده من متون رو... بوده ده. ده. ده. مطرون... من با من با پاشنکشت نمیخوام ایرانوجو ثابت کنم ده. با سند میخوام ثابت کنم ده. ده. مشکلی من این نکته نظر بگید ما متون کوهن رو بیشتر میتونیم قبول کنیم تا متون متأخرتر یعنی شما در متن مثلا کوهن گفته سرزمین مثلا تور اونوره برف جهون بوده خب در متن متأخر گفته که نه آقا حجازا این معلومه ای که متأخر دستکاری بعدی هست. مطمئن ایشون هست. نگفتن که به تور داده چیزو. داشتم نیزه وران مال ایرج بوده. درست اگه اشتباه می‌کنم داشتم نیزوانا ایرج و دست رو دادن به ایرج. یعنی همه میشه کجاست؟ ایران ایرانوچ کجاست جناب ایران مهر. این همه تو سر و کلامو داریم می‌زنیم. بگم خب من بحث خودم رو دو میکنم می‌خونم. کسی منتظر نباشه که من یک سند بخونم که هوشنگ گفته است دو تا نقطه ما در آسیای میانه نبودیم بعد من بخونم بگم بفرمایید ببینین سند خوندم از هوشنگ گفته ما در آسیای منتظر این از... نباشین دیگه وایسین بحث باید با عقل شنونده جور در بیاد یه تفسیری از یک سندی میکنن همچون که میبینین گویا یک جمعیت یک زمانی در آسیای میانه بوده حالا بعد ما دونه دونه مرحله مرحله مرحل میایم جلو بعد هر چی میگیم یه سندی او تجمع بدین میگن که نه اونجا خوب هنوز باستان شناسی نشد تمام روسا و لاستانی و آمریکا رفتن جگر مصر رو آوردن ایران رو تیکه تیکه کردن فرانسوی ها و روسا. ماد رو رفتن همهصبح به سوره هاشو گشتن همه یکی که میگیم چون هیچ چرا توش پیدا نشده دیگه هنوز نگشتن. حالا ایشالان بعد ها خیلی کاخ و تشکیلات و بازماندا ایرانوی و, بازمانده ایران و جو حتما تو آسییه میانه خواهند کرد امیدواریم بعد برای تاییدشون هم که هی سند میگیم نه این, این که نشد یک سند باز متاخرتر میخونن حالا من گفتم اون بحث تورها رو مطرح کردم بعد چون من مرحله به مرحله نمیخوام دو پاسها دوستان رو بدم مثلا مسائل ژنتیکی های فیروز مطرح کردم ایشون بله کارشناس های ژنتیک بنده از مؤسسه های ژنتیک معتبر جهان میخونم که ببینین اون پجوی های فیروزی گفت درسته ها منتها نوع نگاهی که ایشون میخواد بکنم همونجوری که دکتر گفتن وقتی اروپایا رفتم به هند همش چون فکر میکردن که اینا نمیتونن از ما باشن داستان کوچ رو ساخته بودن بعد هر سندی هم پیدا میکردن تلاش میکردن یه جور او و کوش رو ثابت کنن نمی‌دونید چون ذهنیت اول کوچه شما هر سندی پیدا کنین هم به کوچ دیگه دوستان اسنادی که باز مانده از این همه حیاهو ای تو تاریخ او هم فقط از اسناد ایران خاوری یک بخشی از اسناد ایران اسناد ایران خاورین همش که نیستن که اسناد ایران خوابری که همه سنده ایران نیستن که تازه بخشایی که دیگه تک پاره دست ای موبد و او شازان و او ماخ و اینا باز نویسی شده و توسط موبد و مقای بعدی اونو پیدا کردن حالا میخوان با اون کل تاریخ بشر رو توضیح بدن اوزمه های ایران ببینید اون چیزی که من میگم این در رامیشت و آبانیشت و ارتایشت محدوده حکومت فریدون اون چیزی الو اسماء روش بلخ و اصفهان و مناطق آسیای میانه که باش صغ اینا میگیم این منطقه است بعدن به واسطه اونجایی که مثلا ازش هم شده بی به زهاک از کبیر این تا ما فهمگو این کوه کرندن بوده یعنی غربی تا این نقطه شه بعد که متأخر میشه اسناد پهلوی اسلامی این دید رفت تا تنجه و نمیدم کجا و نا کجا بود یمن و این حرفا یعنی ما نمی‌تونیم بیایم بخواهید ای الحاقات یک سند متأخرتر اون سند کهن‌تر رو ول کنیم ببینید ما در مصرشناسی هم داریم اومده که مثلا رمسس دوم لشکر کشی به اروپا ما امروز میگیم که رمسس دوم از صحرای سینا یه بار خاله شده با چی زری روسا کلیم با اون هیتیایی ها و خداحافظ در جنگ قادش هر خردی شما میگید هم خرد هم هم گفته دیگه هر خردی حکم می‌کنه سند قدیمی‌تر دست نخورده نخورده‌تره ما میگیم واقعه سند ما مهریشته. شما میگید موقع... ما میگیم واقعه در مهریاش نیست مثلا تمام شما بگید این مهریه است یه سندی که از مهریه نوشتنش مال کیه آقا شما بیارید چنان که بعد ما دست... از رفتن تورها به اون منطقه ما چیزی که ماده داشت دارین مال صبح... داخل زمانیه که تورها اون تو منطقه بوده آقا شما از اون منطقه که خیلی خوب بوده و خیلی قشنگ بوده و خیلی تاریخ داشته ام... یک صفحه نمیگیم آقا به چند هزار صفحه واسه ما بیارید یک صفحه بیارید برای ما بعد از مهریاش کوهندر باشه بعد ماده باشه سرزم ح گفت داره شما باشه. از میون سنع های ایران خاوری چند باری تیکه باری. سنت که به دستون دارین میخونین میخواین کل تاریخ بشریت رو با اون توضیح باری. بدین اون سنت... یکم کم ذهنتون بلند قلم رو میانی رو ببینین از کلش از... سنند بیارین حالا چیزی دیگه این موقع نتونم ببینید اون یشتایی که گفتم غربی ترین نقطه حکومت این آقای فریدون رو دیگه میگم تا کویین ترری آخرشگه عادت دارن که این کابینیتن باید کرند باشه در کرمانشاه حالا ما مطمئن نیستیم ولی بغیش مشخصه محدودیتی که داره مثلا این ریز نامی بره ولی چیزی که من میخوام خدمتتون بگم خیلی ساده است این آقا اونم این محدودیتی که بعدا حل اسطوره ایشکن تا کوچیک شونده تقسیم برسه کرده با. که بعدا تکرار شود اون وسط هول دریاچه رو تا رود شیهون داده به پسری که اسمش ایریاس، است ایرج نبوس ما میشناسیم و وارث اون کشور خوری نسای سخت نام دیگه برای ما منحل شد تقسیم بر سه شد بله این واژگیشون گفت سه شده عین کاری گفتم در جای دیگه شده اون ملت سازی که وسعت شده بلد. به نام ایریانس سرزمین ایرج آریایی ها سرزمین آریایی ها این تشکیل شده تازه سالها بعد از ایرانویچ سال سالها بعد از ایرانویچ شما میفرمایید از دریاچه مرکزی فلات ایران به سمت رود جیهون داده به ایرج چرا حالا اسمش شده ایرج این آقا اسپ یه سرزمین کهن رو گوشه روی پسرش. ناشون ولی سرزمینش بعدنا نشد. اون صفت اولیاشون اسم اولیش گوشون پسر. اینا دور اون به اون عشق اون سرزمین رو گوشون وسط. یه 1 میلیون کیلومتر مربع نمیشد. خب بفهمید. آره. با هل کولوک میدویده میرفته ارون که ازش رد شه برو بر این دیگه, دیگه بزنگه. ارون نمیدونه چه بر از باستان شناسی و آب و هواشناسی اونجا باطلاق بوده. این باطل اینپوس این الحاقاته. اون با زمان شما باطلاق بوده که اون موقعی که تو سندز سومری میگه اوریدو در کنار دریاست نه نه زمانی اون... که ما داریم میگیم کاهنطره فیروزی اونجا هنوز باطلاق بوده من قبول دارم یک زمانی باطلاق بوده اما تو زمان شما دارین اونجا ذکر میکنیم باطلاق بوده زمانی که ما میگیم مال قبل از اونه هنوز باطلاق نشده بوده اونارو توضیح دقیقاً. میدم وقتی خلیج فارس خشک بوده میشه میان رودان باطلاق بوده باشه دقیقاً نه. وقتی مشکل... خلیزفاز پر شده دقیقاً. و دم زده اوریدو کنار دریا بوده اخو مشکل اینجاست که جناب آقای فیروزی خب زمانش به زمان نیست دوره فریدون, فریدون... بله. 8500 سال پیش میده بله. بله. خب شما فریدون مال 14 سال پیش میده اون موقع باطلاق نبوده دقیقاً. ما در ارتباط میان فریدون و دماوند بنده هیچ شکی ندارم من که درباره پیوند میان جمشید و بابل که مکرر در اسناد آمده شکی ندارم. چقد زمان واسه تمام حدوداً 2 دقیقه فرصت پیش نمی اومده. ببینید یه تیکه سند از سندا ایران خاوری برای ما مونده که مقدسه خدا رو شکر که همینم مونده. اگه نمون که نمون که اصلا ول بودیم دیگه. همین 8 تا نمون که با هم چیکار کنیم؟ بله دقیقاً. اما اگه ما تنها فقط بریم یک حمید بگیم چی چی اش تو خونیم دیگه کل تاریخ رو همه با ما تعظیم کنن این میشه که یک پیچ از خود رو بدم به شما. شما بگید این بنز چند سیلندره دراش چی شکلیه رنگش چه جوریه مگه میتونی یعنی میتونید باهات باید همه, همه چیزشو بدین 4 تا گلگیرشو دست کم به شما بدن یک محل کارخونهشو به شما بگن یک صاحبشو ببینید نمیشه که با یک پیچ شما همه چیز دوستان با یک پیش میخوام کل ماشینو بگن چند شکلیه ما باید پس بدون بال شوالیه تکمیلی باشیم من احساس میکنم اگه بیا مسابقه بذارن خب به این دوستان همی که دیگه ماشاءالله 99 درصدن ببین فرض کنن آسیای میانه اصلا نیست رو کره زمین تاریخ ایرانو بگید به جان خدا اگه بتونم بگم اصلا باید اصلا نمیتونم بگن دیگه همگی زباناشون 100 درصد بند میاد و دیگه نمیشه تاریخ رو با فلسفه تاریخ فهمیرین که شروع تفره تفره نه جو... شروع از سند نه آقا دکتر ببینید مرز کردم یه چهار چوبی دارم اون چهار چوب میرم جلو اگه میخواین جویده جویده اینا رو بگم بره که ببینین گفتم اینا نیازی به اثبات فرضیه شون ندارن اما من دارم شما باید تایید من باز فرضیه ما اثبات مثلا آقا فیروزی تو پایان نامش دائم بهش حمله میکردن آقا چی داری میگی کی داری میگی حتی استاد داوره هی ما بهش اشاره می‌کنه فیروزی بگو خب باز آخر دیگه خود آقا زرین کوب دیگه ناچار شد گفت بابا این بنده خدا آخه کسی تا حالا قبلا نگفته هزار سوم ما اتاق سیاسی داشته ای بر از رو کتاب و بین می ناچار نا هزار تا چیز بگید تا این اثبات کن شما ایرانویچ رو بگید بعدا دلیلات رو بگید فقط بگید کجاست رو من منفعلا میخوام به من به شما کاری ندارم شما که میدونی ایران وش کجا بوده من هم به بگم که ایران وش نمیتونه اون جایی که همه میگن باشه این اینو جا بندازم بعد میرم سراغ تضی هست دیگه آقا میگه که آقا اگه مثلا ایشون بگن, بگن, بگن که ایران وش مثلا ما هم بتویم دلایل من فقط گفتم که ما هم بتویم بدیم اگه نمیشه که وایس ما تورها دارین ایشون ردش کنه سکات ترون میساین اشتغال محضی که میکنن تورانی کی بودن کجا رفتن تو گم به هیچ اومان جاز تورا توران کجا رفتن هرگز هم نبود که نشدن که یه جایی بودن دیگه شدن در جمعیت های بعدی جمعیت های بقید بقید جمعیت زرد ساکاها دو رگیا ساکو میگن خب میگن اصلا, ها... آ... اصلا کما آریو رو بس خودش اصلا دو رگیاهایی که بعد از پسر رو... دوم فریدونه. این اهمیت این جمعیتو داره نشون میده میگم تو تاریخ دیگه نی نبوده نیست میگم هنوز قایم پنهان شده الانم نیست الانم هستن نه مستعجل حل شدن در جمعیت‌های بدی با... اسکیم <تصفح> <تصفح> ما اسکیما نمیتونیم خیلی متشکرم بندگان گرامی که به این برنامه توجه فرمودید ما مباحثمون همچنان ادامه داره درباره هم مکانیابی ایرانویج و هم زمانیابی. ما در برنامه آینده این مباحث رو ادامه خواهیم داد. قسمت 25م رو به پایان هست. خدا یارونی که